تو دیو نگاهت تو دیو نگاهت اتر مشکل الله گرفت تو دیو نگهت اترمش که نا گرفت عباس روزه روزه همه بنی آشه شب آخری محفل و مجلس با سفاتو. شالله یه شب بیناله این باشیم اونجا روزه ای غمروانی آشم بخونیم این بیت همتون عاشق و دل باخته و گریه کنه هستیم این بیت مصره اول حالته دل نوشته شاعره اما مصره دوم تصویریه همه تو باید تصور کنیم چه لحظه که تو بودی و نگهت اتر مشک نام گرفت به دست دخترکی Cheerie to God. چهره تو قاب گره امو, امو. آه. همیشه آبای موتی آزمین آبای این چه بیتیه همیشه همیشه همیشه دخت علی همیشه دخت علی تا سوار ناقشوت شما مستنهی هستین که جلو جلو میرین ها خدایی حق شماست که همین الان یه برات زیارتی القمه به شما بدم همیشه دخت علی تا ناق شود شکوه زانوی تو حالت رکاب خاطر این وقتی زینب روز 11 هم همه بچه ها رو سوار ناغه کرد با حسینش ودا کرد اون معمورینی که معمور بودن زینبو با اون وزن نمیگم سوار ناغه کنم خانم برگشت به طرف نهر القم اخی اول همیشه دختر علی تا سوار ناغ شود شکوه زانوی تو حالت رکاب گرفت بذار یکی دیگه هم بگم ببینین چه کسایی بهره بردن از فیوزات عباس از آن که شیر شجاعت ز مادرت خردی اینجا به به میگی اما من سه میدونم که گریه میکنی از آن که شیر شجاعت ز مادرت خردی چه در ساق که تو کودک رو دان که شیر شجاعتس مادر از خوردی چه درس ها که ز تو کودک رباب گرفت چه قلب ها کوتاه میکنم چه قلبها ها که به یاد تو چه قلبها چه قلب ها چه قلب, ها. چه قلب ها. که برای تو می نشد آب که تشنه بودی مشک تو تعم آب که تشنه بودی مشک تو طعم آب گرفت دویت داره اینجا اگر بخوام اصولی نگاه کنم شاید سخت باشه اما حالی که تو شما میبینم و اون شوق و اشتیاق و معرفت و الحمدالله تو این مکتب علمی که دارین ای که متوجه میشین این دو بیتو میخونم چون روزی تونه. بعد روزه می خونم اگه تونستم اما این دبی تو بعد برسونم تو هم باید بگیری ز شیده تبریز آورم بیتی لب بیت تضمین کرده خیلی عالیه. ز شیده صالب تبریز آورم بیتی که سید و که مضمون چنان آب گرفت این باید این باید با دلت کار میکنه یا نه درسته آب نرسوندی به خیلی آب درسته عباس همه اینو میدونن اما زهوس اما. ز حسن فیض تو ز حسن فیض تو شد عالم آنچنان سیرا. ز, ز حسن فیض تو ز حسن فیض تو شد اولمون شنون سیروب که می توان ز گل کاغذی گلاب گره که می توان ز گل کاغذی گلاب گره آماده این همتون دوسه بیت بخونم تفیز کنم اما اما نشست دریم خون تا مه بنی هاشم نشست دریم خون تا مه بنی هاشم کنار الغمه دیدند off it's all get it <laughs> <laughs> از دریم خون تو مه هاشم کنار القبه دیدند آفتاب گرفت پدر القمه قامت خمیده بر در الغمه غمه آمد خمیده برمیگشت سکین آمد و با گریه راه باب گره گفت یا ابتا اینه امی الاب بیتو زهرا سلام الله علیه btzs.ir